ببخشید آقا، من یک بسته پستی دارم. بسته را به کجا می فرستید ؟ آن را به ژاپن میفرستم. چه چیزی در این بسته است ؟ سه تا کتاب لطفاً بسته را باز کنید. ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص میگذارید. این کتاب ها کی به ژاپن می رسد؟ با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز؟ با پست عادی با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن می رسد. با پست پیشتاز چطور؟ با پست پیشتاز کمتر از ده روز. لطفاً نشانی را اینجا بنویسید. بله، حتما.